داستان کبوتر دوست پادشاهی بود که دختر زیبایی داشت موهای این دختر انقدر زیبا بود که احتیاجی به آرایشگر نداشت دختر پادشاه خودش هر روز موهاشو شونه میکرد یه روز که داشت موهاشو شونه میکرد همین که شونه رو گذاشت کنار پنجره یک کبوتر هم نشست لب پنجره و فوری شونه رو برداشت و پرید و رفت شاهزاده خانوم فریاد کشید. آهای کبوتره، زود با شونه منو بیار. اما دیگه کبوتره رفته بود. روز بعد دوباره شاهزاده خانوم کنار پنجره مشغول شونه کردن موهاش بود که دوباره کبوتره از راه رسید. و این دفعه روبان گیس بافت موهای دختر پادشاه رو برداشت و رفت. روز سومم دوباره کبوتره برگشت. و این دفعه پارچه ای رو که روی دوش دختر پادشاه بود گرفت و با سرعت پرید و رفت دختر پادشاه خیلی عصبانی شد نردبون ابریشمی رو گذاشت رفت پایین تا دنبال کبوتر بگرده کبوتره به جای اینکه مثل همه پرنده های دیگه فرار کنه صبر می تا دختره بهش نزدیک بشه بعدم می پرید و میرفت. دختر پادشاه بیشتر عصبانی میشد تا اینکه کبوتر با پرهاش پرید و رفت توی جنگل شاهزاده خانم هم پشت سرش وسط جنگل یه کلبه دورافتاده ای بود کبوتر رفت تو کلبه درباز بود شاهزاده خانم هم به دنبال کبوتر وارد اون کلبه شد شاهزاده خانم یه جوون خیلی خوشگلی رو توی کلبه دید ازش پرسید شما یه کبوتری که رونوکش یه پارچه باشه ندیدین؟ جوان زیبام جواب داد. چرا دیدمش؟ من همون کبوترم. دختر پادشاه گفت شما؟ شما همون کبوتریت چطور ممکنه؟ پسر جواب داد. آخه جادوگرها منو جادو کردن. من نمیتونم به شکل آدم از اینجا بیرون برم. مگه اینکه تو به مدت یه سال و یه ماه و یه روز زیر آفتاب زیر ستاره ها کنار پنجره این کلبه بشینی و زل بزنی به این کوه روبرویی که من به شکل کفتر بشم و از اینجا بیرون برم شاهزاده خانم در نشست کنار پنجره و کبوترم پرید و رفت روی کوه یه روز گذشت دو روز گذشت سه روز گذشت شاهزاده خانم صاف زل زده بود و نشسته بود اونجا هفته ها گذشت، شاهصاد خانم زیرا آفتاب و محتاب و ستاره ها مثل چوب بی حرکت می نشست و کم کم رنگش هم سیاه و سیاه‌تر می‌شد. خلاصه، یک سال و یک ماه و یک روز گذشت. کبوتره به شکل آدم در اومد و از کوه اومد پایین تا چشمش به شاهصاد خانم که سیاه سیاه شده بود افتاد، داد کشید و گفت اه چه بد ترکیب از اینکه با این قیافه زشت جلیه مرد مردمی خجالت نمیکشی دختر بدبخت که فکر میکرد داره میمیره راهشو گرفت و رفت مثل ابر بهار گریه میکرد تو مسیر سه تا پری بهش رسیدند و گفتند چی شده چه اتفاقی افتاده چرا داری گریه میکنی؟ و دختر بیچاره ماجرا رو برای اون ستا پری تعریف کرد. پری ها بهش گفتن بی خیال همیشه که اینطوری نمیمونه. پری بزرگتر دستی به صورت دختر کشید و دوباره دختر پادشاه مثل اولش زیبا شد. حتی قشنگتر از قبل مثل پنجه یافتاب. پری دوم یه دست لباس ملکه بهش داد. و پری سوم هم یه سبد جواهر پریها به دختره گفتن ما حالا با تو میمونیم و وانمود میکنیم که خدمتکاراتیم خلاصه دختر پادشاه و پریها راه افتادند به طرف شهر اون پادشاه جوون پریها تو یه چشم به هم زدن جلوی قصر پادشاه قصری ساختن که صد مرتبه قشنگتر از اون بود پادشاه اومد جلوی پنجره و چشمش افتاد به قصری که خیلی قشنگتر از قصر خودش بود. دختر زیبای ما مثل همیشه جلوی پنجره اومده بود. پادشاه بر روبر مشغول نگاه کردن دخترک شد. پریها به دختره گفتن اگه برات دلبری کرد بهش اصلا توجه نکن. خلاصه. پادشاه هر روز میرفت کنار پنجره و به دخترک نگاه می کرد. آخر سر ازش پرسید که آیا قبول می کنه که به دیدن پادشاه بره؟ شاهزاد خانوم یک بار گفت نه، دو بار گفت نه، ولی بالاخره گفت باشه علا حضرت. اگه می بیام دیدنتون، باید از پنجره من تا پنجره خودتون یه پل بسازین. روشو با گلبرگای گل سرخ به کلفتی دو وجب فرش کنین. پادشاه از خوشحالی حتی نزاشت حرف دختره تموم بشه. فوری دستور داد پل بزنن. صدها زن و بچه رو مجبور کرد به چیدن گل سرخ و کندن گل برکاش. یه چیز تماشایی ساخته بود. وقتی که پل گل برکای گل سرخ آماده شد، پریها به شاخصاد خانم گفتن لباس ملکه رو بپوشو ما به عنوان ندیمه ها تو رو تا اونجا همراهی میکنیم. ولی وقتی رسیدید وسط پل وانمود کن که یه خار رفته کف پات و بعد بقیه رو بذار به ما شاهزاده خانم لباس صورتی ای خودش رو به تنگ کرد و راه افتاد. روی گلبرگهای های گل سرخ را میرفت. پادشاه از طرف دیگه بیتاب منتظر رسیدنش بود. اما ملکه بهش اجازه نداده بود که حتی پاش روی پل بذاره. وقتی که شاهزاده خانم رسید وسط پل یهو فریاد زد آخ خار رفت کف پام و خودش رو زد به قش و ضعف. پریها بلندش کردن و برگردوندنش به قصر پادشاه میخواست کمکش کنه اما اجازه نداشت و همونجا موند و فقط صحنه رو نگاه میکرد پادشاه تو قصرش نشسته بود و رفت آمد طبیبا و پزشکار رو نگاه میکرد همون لحظه دید که یک کشیش با کتاب دو وارد وارده شد. فقط پادشاه نمیتونست بره پیش ملکه. شایه شده بود که پای ملکه ورم کرده و همینطور داره بدتر و بدتر میشه. اما خلاصه بعد از چهل روز گفتن که مریضی ملکه خوب شده و دوباره جون گرفته. پادشاه وقتی که فهمید حالش خوب شده دوباره ازش تقاضای دیدار کرد. پریها به دختره گفتن بهش بگو که به دیدنش میری. اما یه پل میخوای با سه وجب گل یاسمن. وقتی هم رسیدی وسط پل دوباره خودتو بزن به قش و ضعف و بگو که دوباره توپات خار فرو رفته. پادشاه فوری دستور داد تا همه یه گلایی یاسمن مکت بچینن و یه فرش دیگه از اون درست کنن. وقتی پل آماده شد، دختره، دوباره لباس ملکه ایش رو به تنگ کرد. شروع کرد به راه رفتن روی پل. پادشاه از ترس اینکه که مبادا دوباره خار تو پای ملکه فرو بره دل تو دلش نبود. وقتی ملکه رسید وسط پل دوباره وانمود کرد که خار تو پاش فرو رفته. ندیما ها که از حال رفته رو روی دستاشون بلند کردن و دوباره به قصر برگردوندن. پادشاه خیلی عصبانی شده بود. با اون حال دوباره خدمتکارای خودش رو فرستاده بود تا با ملکه قرار ملاقات بذارن اما خودش اجازه نداشت که مثل همیشه روی اون پل قدم بزنه پادشاه خیلی کلافه و عصبانی بود تا اینکه بالاخره مریض شد اما با این حال باز هم سفیرای خودش رو میفرستاد تا از حال روز ملکه خبر بشن و بالاخره براش پیغام فرستاد که اجازه بده با همون حال مریضش به دیدن ملکه بره چون میخواد ازش خواستگاری کنه. شاهزاد خانوم در جواب سفیرای پادشاه بهش گفت بهش بگین موقعی میتونه نزدیک من بشه که من تو تابوت ببینمش. پادشاه که دیگه عقل از سرش پریده بود وقتی این جواب رو شنید دستور داد یه تابوت براش بسازن. دور تا دورش هم شم گذاشتن. پادشاه خودش رو به مردن زد و توی اون تابوت خوابید. خدمتکارا تابوت رو بردن زیر پنجره اتاق ملکه. به ملکه گفتن بفرمایید. اینم از پادشاه مرده ما. دخترک وقتی رفت جلوی پنجره، وقتی چشمش به پادشاه مرده افتاد گفت ببین با خودت چیکار کردی؟ آخو آدم برای به دست آوردن یه زن باید همچین کارایی رو بکنه؟ پادشاه با شنیدن این جمله یاد حرفایی افتاد که به اون دختر مهربون که مثل زغا سیاه بود زده بود افتاد. با خودش گفت چقدر شبیه همون ملکه زیبا صحبت میکنه که من قبلا آشقش بودم. نکنه این همون باشه. و یهو یه فهمید که بله این دختر همون دختریه که قبلا پادشاه آشقش بوده. حالا خودتون حال روز پادشاه رو تصور کنید. اون که خودش رو مردن زده بود حالا از خوشحالی چیزی نمونده بود که راست رو را جونش رو از دست بده همون لحظه ندیمه های شهزاد خانوم از راه رسیدند و به پادشاه گفتند سرورشون منتظرتونه پادشاه رفت توی قصر دخترک و ازش تقاضای بخشش کرد بعد از اون فوراً بارگاه پادشاهی رو آماده کردند و خر شاهزاده خانوم و پادشاه با هم ازدواج کردن پادشاه از اون ستا پری هم خواست که پیش اونها بمونه و با اونها زندگی کنه اما پریها قبول نکردند و از اونجا رفتند. سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها. از غول ها و کوطول ها ماشراهایی از جادوگرها سفر به سرزمینهای جادویی و تلزم شده، رفتن به دنیای پریان، ماشراجویی در سرزمینهای زیر دریا، همه در در اینها و بیش از اینها، در کانال تلگرامی هزار افسان داستانهای افسانهای صوتی